ببرد از من قرار و طاقت و خوش بوت سنگین دل سیمین بناگوش نگاری چابکی شنگی کلاهدار ظریفی محوشید ترکی غبا پوش زتا به آتش سودای عشقش به سان دیگ دائم میزنم جوش چو پیراهن شبم آسود خاطر گرشم چون قبا گیرم در آغوش اگر پوسیده گردد استخانم نگردد مهرت از جانم فراموش دل و دینم دل و دینم ببرده است برو دوشش برو دوشش برو دوش دوای تو دوای توست حافظ لب, لب نوشش لب نوشش لب نوش